حکایت بازرگانی را شنیدم که صد و پنجاه شطر وطور بار داشت و چهل بنده خدمتکار شبی در جزیره کیش مرا به حجره خویش درآورد همه شب نیارمید از سخنهای پریشان گفتن که فلان انبازم به ترکستان است و فلولان بزاعت به هندوستان و این اینقباری فلان زمین است و فلان چیز را فلان زمین گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که هوای خوش است باز گفتی نه که دریای مغرب مشوش است سعدیا سفری دیگرم در پیش است اگر اون کرده شود بقیت عمر خیش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 به دکانی بنشینم، انصاف از این ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند، گفته سعدی تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده ای و شنیده ای. گفتم، آن شنیدستی که در اقصای قور بار سالاری بیفتاد از سطور، گفت، چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گو؟